سلام، مرتزه اسلامی هستم از انجامن یوزفلنگ ایرانی وضعیت یوزفلنگ ایرانی به شدت بحرانی یوزفلنگ ایرانی با مشکلات خیلی زیادی داره دست و پنجه درمون کنه متاسفانه مطالعات اخیر نشون داده که روند جمعیت یوزفلنگ ایرانی کاهشیه به ویژه نگرانی جدی که ما داریم در مورد تعداد مدده هاست که به نظر میاد توی بعضی از مناطق از بین رفتن و در مجموع تعدادشون روبه به کاهشه. برای همین امروز دو تا کمک از شما می‌خوایم. مورد اول این که با توجه به مشکلات زیادی که دوست ها باهاش دست به گریبانن، به نظر میاد حفاظت از این گونه دیگه از عهده یک سازمان یا ارگان به تنهایی بر نمیاد. و همه ها همه ارگان ها و همه مردم باید کمک بکنن تا بتونن از دوست حفاظت بکنن. برای همین ما یک نامه ای رو نوشیم خطاب به رئیس جمهور محترم کشورمون و اون رو در سایت اگر که پاورپونت بل روی آدرسی که میبینید در سایت چیتادهی داتکام اون رو قرار دادیم و از شما خواهش می‌کنم که به این سایت تشریف ببرین متن رو مطالعه بکنیم در صورتی که با مطر موافق بودیم اون رو امضا بکنیم و در مرحله بعد این سایت رو به بقیه دوستانتونم معرفی بکنیم. هرچقدر تعداد امضا کنندگان این نامه بیشتر باشه با پشتبانه اجتماعی بزرگتری برای ارائه درخواست هامون برای حفاظت از نوز به جناب آقای رئیس داریم. بر همین شما با همین دوتا کار ساده یعنی امزای نامه و معرفی اون به دوستانتون بسیار ما رو برای حفاظت از نوز کمک خوا باعث خواهد شد که دستگاه های مختلف هم در کنار سازمان حفاظت میسیس قرار بگیرم و به حفظ ایوزپن کمک کنیم. اما خواهش دوم و کمک دومی که ازتون میخوام اینه که ما برای حفاظت از ایوزپن با یک چالش جدی مواجهیم و اون کمبود منابع مالی. بعضی ها شاید فکر میکنیم که خبت این سال ها پروژه وجود داره بودجه اختصاص داده شده ولی واقعیت اینه که انقدر مسائل موط به حفاظت گسترده است، که اتفاقا کل گوجه‌ای که تایی 16 سالی گذشته تاله برای حفاظت از یوزپلنگ اختصاص داده شده نه تنها کافی نبوده بلکه در مقایسه با پروژه های مشابه برای حفاظت از گونه های حیطه بش بیج گوربسان بزرگ در کشور دیگه بسیار ناچیز هم بوده حفاظت متاسفانه بسیار کار پرهزینه‌ایه تامین نیروی حفاظتی حفاظت از کریدورهای مهاجرتی خرید مستثنیاتی که توی زیستگاه های و, و در آزاد سازی اونا در بعضی از موارد فنز اینا همه و همه فعالیت های حفاظتی بسیار گرام قیمت و خورهزینه و یک نکته مهم اینه که حفاظت هیچ وقت تموم نمیشه به خاطر اینکه مرتب شرطی زیستگاهی در خطر از بین رفتن به واسطه اثرات توسعه به هیچ وقت شما نمیتونید برای گونه این مثل یوزپراین که در رأس هرم غذاییه و همه طبقات پایین هرم باید فراهم باشه تا انسان بتونه زندگی بکنه هیچ وقت نمی‌شین بگین که مثلا من 10 سال حفاظت می‌کنم بعد اینجسمن از انقراض نجات پیدا می‌کنم نه به هیچ وجه بلکه حفاظت باید مثل یک فرآیند مستمر و کامل ادامه داشته باشه و رشد بکن. و برای همین ما با یک چالش بزرگی هستیم با چالش بزرگ دوباره هستیم و همونطور که گفتم کمبود منابع مالی به عنوان مثال یک تحولی که انجام شده در سال 91 چیزی در حدود 11 میلیارد تومان احتیاج بود برای ارتقاء وضعیت حفاظت از زیستگاه‌های اصفهر در حالی که کل بودجه‌ای که اختصاص شد داده شده به حفاظت از زیونه چه توسط ارگان دولتی چه توسیده ارگان غیر دولتی زیر سمیندارتون بوده ته 15 16 سال یا مثلا ما محاسبه کردیم برای یکی از مناطق برای که رفع تهاجوز انجام بشه و مستثنیاتش خریدی بشه چیزی بین 20 تا 60 میلیارد تومان احتیاجه و هرگز هیچکس این پول رو نداره بده نه سازمان محیطزیست میتونه این پول خرج بکنه نه ادارات نه NG پول بسیار پول بزرگی برای همین از این جمع کمک میخوایم از این جمع که فکر میکنیم یک جمع خلاقانه است و ارتباطات خلاقانه ممکن داشته باشین که به ما بگیم چطور ما میتونیم این پول رو تهیه بکنیم اسامی که تشریف بر بیرون حالا توی زمان‌هایی که وجود داره، یه کمی بگردین یک تصویر رو پیدا می‌کنید یه تصویر رنگی رو پیدا می‌کنید که من در کنار اون تصویر بیسبالنگ با کاغذ یه سفید و خودکار در خدمت می‌خواهم بود تا ایده‌هایی که به ذهنتون میرسه رو برای ما بنویسید یا اگر بعداً ایده‌هایی به ذهنتون رسید برای آدرس ما ارسال بکنید و با این کارتون هم بسیار به ما کمک می‌کنید به ما بگین که چه روش رو پیشنهاد بیدیم برای تأمین پول مردنیاز برای حفاظت و آیا خود شما هم میتونید در این رابطه کمک بکنید؟ حالا این کمک میخواد کمک فنی باشه، کمک ارتباطی باشه به هر شکلی شما چطور میتونید برای ماجرا به ما کمک بکنید؟ ازتون متشکرم.